من برگر دانشجوی سال دوم کالج کانکتیکات بودم که پروفسور لستر رایس در کلاس فلسفه مقدماتی تکلیف پرمغزی به ما داد. رایس در اواسط ترم دستور نگارش اولین مقاله اصلی کلاس را داده بود. باید مقاله می نوشتیم که از پنج صفحه بیشتر نشود. او دستورات خاص دیگری نداد مگر عنوان مقاله: دیدگاه من درباره جهان. تکلیف دل آور اما العاده ای بود که تمام فیلسوفان بزرگ باستان را از نظر بگذارانیم و ایده را در ذهن خود سبک و سنگین کنیم. در اواخر ترم پروفسور رایس دستور نگارش مقاله ده صفحه دیگری به ما داد. او باز فقط عنوان مقاله را تعیین کرد. دیدگاه من درباره جهان. فرصت مرور دیدگاه های دو ماه گذاشتم، و مشاهده نحوه تغییر ذهنیتم تمرین قدرتمندی بود که به منزله درس مهمی در خاطرم ماند. در واقع از این ایده ژرف در کلاس های ریاضی خود سود جستم و به این ترتیب که از دانشجویان میخواهم به طور منظم مفاهیم قبل را مرور کنند. خواه دانش آموز باشید یا نباشید این فرصتها را برای خود خلق کنید. اجازه دهید کار از طریق تشخیص و بهبود مکرر پیشنویسها و گام های نادرست رشد کند و متحول شود. برای شکست اعتبار قائل شوید معلمان باید گام های نادرست مفید دانش آموزان را قدر بدانند زیرا تلاش های ناموفق سرانجام به نتایج مهم منتهی شوند. مثلا اگر معلمی امتحان نهایی را از تمام مباحث بگیرد، چرا نمره آن را جایگزین نمره آزمون قبلی نکند در حالی که ارزش امتحان نهایی بیشتر است؟ چرا دانش آموزان را به دلیل گام نادرست میانی آنها که در واقع در فرایند آموزش اهمیت دارد، تنبیه کنیم؟ و چرا از این ذهنیت در دنیای هرفعی و کسب و کار استفاده نکنیم؟ اگر همان ابتدا موفق شدید، بکوشید و باز بکوشید تا سرانجام شکست را پذیرا شوید. ما در کلاس‌های خود غالباً به امد از دانشجویان می‌خواهیم اشتباهات خود را عرضه کنند. ابتدا از دانشجویان می‌خواهیم راه حل خود را برای کل کلاس توضیح بدهند. اگر دانشجویی راه حل درستی داشت، گاهی از داوطلب دیگری می‌خواهیم راه حل نادرستی برای همان مسئله ارائه دهد. تا کلاس بتواند دلایل ضعف آن را شناسایی کند. فهم اینکه چه چیز و چرا درست نیست دانش ارزشمندی است. این روش به اهمیت و ارزش مثبت اشتباه کردن به منزله ابزار پیشروی به سوی فهم میقتر دانش اعتبار میبخشد. دانش آموزان باید از شکست خود در مراحل میانی بیاموزند و رشد کنند. اگر دانش آموزی در انجام دادن تکلیف، ناموفق بود پنهان کردن آن زیر دفترچه یادداشت شکستی احمقانه است این دانش آموز موهبت بزرگی دارد این موهبت که به او گفته شود چه چیز نادرست است اكنون آموز اگر واقعا دلبسته موفقیت باشد وظیفه دارد خطایش را اصلاح کند چگونه با مرور ایدههایی که هنوز محکم و استوار نشدند اما در وقت مناسب نه روز قبل از آزمون دانش آموزان غالباً می گویند 80 درصد تکالیف را انجام دادم همینقدر کافی کافیست و ادامه میدهم. دهم بدی است آنها با چشپوشی از فرصت فوقلاده بهرهگیری از اشتباهات اساساً به طور متوسط 20 درصد نمره خود را در آزمون بعد قبل از موعد آزمون دور می ریزند و کار آتی را بر بنیادی سست بنا می کنند چرا امروز از گام های نادرست خود درس نگیرید و 20 درصد امتیاز آینده را اکنون کسب نکنید؟ اشتباهات فرصت بزرگ آموختن و ارتقا یافتن به شمار می‌آیند. اما باید عملگرا باشید معلم خردمند یا رهبر سازمان در وقت مناسب فرصتی فراهم می تا دانش آموز یا عضو گروه از اشتباهات درس بگیرد برای تبدیل شکست به گام مثبت به سوی موفقیت، باید کار خود را بازنگری کنید، دوباره بکوشید، بیشتر تلاش کنید و کمک بخواهید تا آنجا که کاملاً به ضعف‌های نهفته در تلاش ناموفق خود پی ببرید. ساموئل بکت میگوید: تا کنون تلاش کرده ای، تا کنون شکست خورده ای، مهم نیست. دوباره سعیت را بکن، دوباره زمین بخور، این دفعه محکم‌تر زمین بخور. یافتن سوال درست جواب نادرست. گاهی پس از شکست در تلاش برای حل یک مسئله می فهمید که در واقع جواب ذهنی ای کاملا متفاوت را یافته اید. یعنی راه حل نامناسب شما برای یک مسئله می تواند به کلی به پروژه متفاوتی متعیش شود پروژه ای که حاصل موهبت تصادفی تلاش نامناسب شماست. چسب مزخرف در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی TRAM اگر کسی بگوید اسکاچ کارکنان به جای نوشیدنی یاد چسب شیشهای می‌افتند و دلیل خوبی هم دارند. TRAM از تولیدکنندگان پیشرو تمام چیزهای چسبناک است. در 1970 اسپنسر سیلور، دانشمند TRAM به شدت برای ابداع ماده چسبنده قویتر کار می‌کرد. اختراع او شکستی پرآوازه بود. در واقع چسب او از محصولات دیگر تیری ام در آن زمان ضعیفتر بود. به قدری ضعیف که پس از چسبیدن به اجسام به آسانی بدون نهادن ردی از آنها جدا می شد. خب که اینطور سیلور به دلیل تلاش ناموفق خود از کوره در نرفت و تیری ام هم او را اخراج نکرد. انتخاب عاقلانه بود زیرا چهار سال بعد هنگامی که آرتور فرای دانشمند تری ام به دنبال راهی برای قرار دادن چوب الف در کتاب دعایش بود طوری که نه بیفتد و نه به صفحات آسیب بزند به یاد محصول ضعیف همکارش افتاد فرای بخشی از چوب الف را با چسب بسیار ضعیف سیلور پوشاند و ناگهان یکی از سوداورترین محصولات تری را خلق کرد یاد چسبدار چسب دار. همه چیز از یک تلاش ناموفق آغاز شده بود تصور اشتباه به منزله جواب نادرست احتمالی به یک سوال دیگر تفکر ما را متحول می کند ما به اشتباه به منزله جواب نادرست نگاه نمی کنیم بلکه آن را فرصتی برای طرح این سوال در نظر می گیریم سؤال این جواب درست کدام است؟ دو واکنش به اشتباهات بنابراین هنگام مشاهده یا اشتباه کردن دست کم می توانید دو کار انجام دهید. یک، اجازه دهید اشتباه شما را به تلاش بهتر رهنمون شود. و یا دو، فکر کنید آیا اشتباه جواب درست به یک سوال دیگر است یا خیر. روش برانگیختن تفکر مؤثر روز بعد. آدم خوب هم روزهای بد دارند. آنچه خوب را از عالی جدا می کند نحوه واکنش ما به روز بد است. روزهای بعد غالباً درسهای بسیار روشنی درباره نحوه رشد، آموزش و بازنگری می دهند. بنابراین دفعه دیگر که با روز بدی مواجه شدید با تلاش آگاهانه به دنبال کشف و استخراج درسهای مثبت از تجارب نچندان مثبت باشید. مثال یک روز ماننده ماری، آیا روزی که ماری در کلاس ریاضی گذراند روز خوبی بود یا خیر. در نگاه اول انگار اوضاع مساعد نبود بحث کلاس درباره مفهوم بینهایت بود که آنقدر که باید ترسناک است اما پس از آن از ماری خواسته شد ایدهش را با کلاس در میان بگذارد. تفکر او کامل نبود اما او با پذیرش ضعفهایش به منزله راهی برای تعمل و آموزش رشد کرد. در پایان کلاس، ماری چیز جدیدی آفریده و درس مهمی درباره نحوه خلق ایدهها در آینده فرا گرفته بود. او روز بدی داشت و با بهرهگیری از آن روز خود را به روزی عالی تبدیل کرد. شکست از روی امد، به سمت افراط. اکنون شکست افراطی را بررسی می کنیم. یکی از راه‌های ژرف جرف دستیابی به کشف های تازه در مسیر انجام دادن کار شکست از روی عمد است. اقراق از روی عمد یا ملاحظه افراتی و غیرعملی ایده ها غالباً ما را چنان رها می که به بینشی غیر منتظر دست میابیم. مثلا تولید از آزمایش تنش تا حد شکستن و خورد شدن محصول استفاده می کنند. مطالعه زمان و نحوه آسیب دیدن محصول حاوی اطلاعات ارزشمندی درباره قوت و ضعف نسبی آن است. به مثالی درباره یک معلم دبیرستان اشاره می کنیم. از او پرسیدند اگر مانعی نبود، ایده های هندسه را چگونه درس میداد یعنی اگر فرض کنیم منابع نامحدود و زمان و پشتیبانی کافی در اختیار داشته باشد. پاسخ او این بود که کل کلاس را به بازدید برج ایفل می برد و با استفاده از زوایا ارتفاع آن را اندازه می گیرد تا اهمیت مسلس های مشابه را بیاموزاند. سفر کل کلاس به پاریس کاملاً مضحک و دور از انتظار به نظر می آید، اما راه حل او که به نظر خودش هم غیرعملی بود در واقع مستقیماً به شهود و الهام مهمی منتهی شود. به عبارت دیگر، چرا کلاس درس را ترک نکنیم؟ دانش آموزان را بیرون ببرید تا بفهمند ریاضیات درباره دنیای اطراف آنهاست نه موضوعی در چارچوب کتاب درسی این بینش مهم نتیجه راه حلی است که به نظر معلم طراح آن غیر عملی بود در کسب و کار می توانید این سؤال را بپرسید که اگر محدودیت های هزینه نبود چه می کردید شاید برخی از جنبه های راه حل‌های های غیرواقعی به یک راه حل عملی اشاره کند که در غیر این صورت هرگز متوجه آن نمی شدید آیا تا کنون تلاش کرده اید یک سازگ فلزی بسازید که در آن یکی از قطعات از بقیه مجموعه جدا شده است؟ روش مؤثر پیش روی این است که وانمود کنید پازل کاملاً انعطاف پذیر است سپس به سادگی می توانید تصور کنید چگونه قطعات از هم جدا می شود با یادگیری گام های لازم حل نمونه پلاستیکی پازل به روش حل مسئله با قطعات صلب و محکم نیز پی میبرید. حل معمای غیرواقعی اما بسیار سادهتر چالش دشوار را به دو گام مفهومی تبدیل می چگونه نمونه پلاستیکی سادهتر بسازیم و چگونه هر یک از گام ها را به قطعات فلزی خم نشدنی تعبیر کنیم. بعضی جنبش های هنری، مانند مینیمالیسم، نمونه‌های مثالی اقراق هنرمند در بیان جنبه جنبه‌ای از هنرشان است. عده‌ای از ناظران نتایج را اشتباه به شمار می‌آورند، اگرچه هنرمندان می‌خواهند نهایت بیان هنرمندانه را نشان بدهند. در هر صورت، کاوش در کرانه ها روشنگر است. راهبرد مؤثر دستیابی به بینش اقراق در شرایط با آزمایش عملی یا ذهنی است. روش برانگیختن تفکر مؤثر در خطاهایتان اغراق کنید مسئله ای را در نظر بگیرید و در جنبه ای از آن تا حد ممکن مبالغه کنید مثلا یک مورد سیاسی شخصی کاری یا درسی را انتخاب و چشماندازی اغراق آمیز از آن ترسیم کنید اگر از دیدگاه خاص استدلال می کنید خواه به آن باور داشته باشید یا خیر استدلال را چنان بزرگ جلوه دهید که به افراد برسید اکنون شرح اقراق آمیز خود را بررسی و ضعف بنیادی آن را پیدا کنید آیا ضعف در دیدگاه بدون اقراق اصلی شما هم وجود دارد؟ این تمرین را در مورد ساختار سازمانی یا ورزش یا هر فعالیت و اعتقاد دیگر نیز می توانید به کار ببرید مانند آزمایش تنش می توانید از این تمرین در مورد آنچه خوب کار می کند استفاده کنید و ببینید چگونه به هم می ریزد. مثلا شرکت های بزرگ هکرها را به خدمت می گیرند تا سیستم های رایانهی شرکت را حک و های امنیتی را شناسایی کنند. به همین صورت بکوشید درباره شخصیت داستانی یا تاریخی یا وضعیت خاص اقراق کنید چون آنکه به نظر شما از حد تحمل خاننده فراتر باشد. هنگام مطالعه طرح خود شاید متوجه شوید که مبالغه شما به منظور واقعی شما نزدیکتر است تا به حدس احتمالیتان اما در هر صورت مبالغ درباره نقش شخصیت یا وضعیت در ذهن شما بینش ای به شما میدهد. از راهبرد مبالغه می توان در مورد هر مسئله از قبیل نوشتن بازاریابی گسترش محصول و سیاست استفاده کرد شما میتوانید از این تمرین بر حسب موضوع خود به شکل عملی یا استعاری استفاده کنید. مثال یک. کسب و کار. کسب و کار الف به دلیل موفقیت رقیب اصلیش ب در حال ورشکسته شدن است. تصور اقراق‌آمیز این است که بخواهیم رقیب از صفحه روزگار محو شود. این تصور مضحک چگونه می تواند به الف کمک کند؟ یک راه احتمالی خریدن ب و در نتیجه حذف آن رقیب است یا می توانیم با تولید محصولات و خدمات مکمل کسب و کار دیگر رقیب را حذف کنیم یعنی به جای رقابت با شرکت شکوفا راه های شراکت در موفقیت او را بررسی کنیم مثلا الف می تواند به ب ابزارالات اجاره دهد و نیاز او را تامین کند مثال دو مدرسه فرض کنید دانش آموزی بخواهد با عجله برای امتحان آماده شود و تکالیفش را در آخرین لحظات انجام دهد. رویکرد کرد آمیز می تواند این باشد که تکالیف را در اولین لحظات آغاز کند. یعنی لحظه ای که دبیر تکالیف را تعیین می کند. این طرح ظاهرا عملی نیست اما به بینش مهمی رهنمون می شود. زمان انجام دادن تکالیف بر بهره ناشی از آن تأثیر می‌گذارد. دانش آموزی که تکالیفش را زودتر انجام بدهد، بهره بیشتری میبرد. حتی اگر زمان صرف شده در هر مورد زودتر یا دیرتر یکسان باشد. یادگیری از گام نادرست دیگران قالبا حتی لازم نیست خودمان مرتکب اشتباه شویم. همه میدانیم که برخی از بزرگترین درس را از بدترین افراد آموخته هنگام مشاهده ی عمل فردی شرور یا بی تجربه، یا ارتکاب اشتباهی بزرگ توسط فردی خوب و توانا تشخیص اشکال کار آسان است و آگاهانه آن لحظه را به فرصت یادگیری تبدیل می کنیم های نهایی ذهنیت اصلاح شده اشتباه و شکست نشانه ضعف نیست آنها فرصت موفقیت‌های های آینده اند شکست نشانه ذهن خلاق، تفکر اصیل و توامند است در واقع یکی از نویسندگان در ویلیامز کالج دورهی به نام کشف خلاقیت آغاز کرده است که در آن دانش آموزان با چالش های فکری ناشنا و استراب آور مواجه می شوند دانش آموزان برای موفقیت در آن دوره باید به خود فشار بیاورند و خطر کنند و بدون ترس از شکست دست به آفرینش بزنند آنکه آماده شکست است کسی است که میخواهد دل به دریا بزند. قبول شکست ویژگی رهای بخش تفکر دگرگون کننده است. شکست، یعنی پیشرفت. شکست به معنای عقب نشینی نیست. غالبا اشتباه یا افشای خطا مهمترین گام به سوی موفقیت است. یک خطای بزرگ ممکن است تنها چند میلیمتر با بینش بزرگ فاصله داشته باشد. هنگام گرفتاری که نمی دانید چه کنید؟ بیکار نمانید، شکست بخورید، با ارتکاب اشتباه نسبت به زمان پیش از آن در موقعیت متفاوت و بهتره قرار میگیرید و این گامی به پیش است که در واقع میتوانید بردارید. آدمیرال گریسماری هاپر میگوید کشتی کنار بندر در امنیت است، اما کشتی را به این منظور نساختند. بیایید صادق باشیم. در واقع شکست ممکن است هولناک و استراباور باشد مانند آزمون راستین با آتش. بنابراین راهبرد شکست در مسیر موفقیت را به آنصر آتش نسبت می دهیم. مسائل نیازمند به راهحل های واقعا خلاقانه از آن دست مسائل به شمار میآیند که روش حل آنها را نمیدانید. این کتاب درباره موفقیت است حتی اگر در ابتدا معمولا شکست بخورید. دلیل موفقیت شما همین است